خیلی خوش اومدیم نموکره چم زمالت هم سیار چم چی آوردنگیم سمی بهوانیتون چطوری همه چی رو براسون آماده کردم چه خوب کردی که اومدی اینجا به خدا دلشوره امانمو بریده بود خدا رو شد که صحیح و ظالمی خودتون تو زحمت ناندازین خیلی اینجا موندگار نیستم <تصفيق> پناه بر خدا چه زحمتی اینجا خونه خودته برو رو تخت استراحت کن برو عزیزم بی عزیزم بشین اینجا برم برم, برم. کجا میخوای بری خب خیل سلم برش تنگ شد تو باشت و برم نمیدونم چی چی بر زندگی کن بدون رو نفذ سبتم بگشم یه بوز گل رو گفت دارم خفش الان پنجره ها رو باز میکنم هوا در جرمیان باشه خونک های باد که به حنجرت بخوره گلو تازه میشه نفس بده به قلبت آهونت میکنه فقط میفکن کنیش لحظه بود درده مهربونی چون بگیره بودم توت جونت ماهش رو میبرسیدن آشان خوز آفزی چشمه رو دوست دارم چقدر من چشمه رو دوست دارم من ملکه ی مرگ رفیق عذبی است. خاطرات تو از پدرت چه تلخ باشه چه شیرین یه نشونه هایی هست ولی من چی بگم خاطرات من از پدرم هیچ این صفحه سیاه ندیدمش وقتی من به دنیا اومدم فرشته مرگ اونو برد من کجای این صفحه سیاه خاطراتم دوبار پدرم رو میخواد بره کجا؟ آروم و قرار نداره میگه میخوام برم سر خاک آقا کجا بره؟ اما کلش هر پیش اینجا رو بلد میسرم وگه ولش نمیکنم آدمان خطرناکی دنبرشم پاشو بذاره بیرون میگیرنش قمر هر جوری شده باید اینجا نه داریم پس خودت باش هر کزا فقط امید به تو آرونش میکنی نمیخوا توضیح بدی خبر دارم این گیره به دستی شما میشه. این گره ای نیست که با دست باز شه. دختره سر پربادی داره. باید بالاش قیچی شه. یه جا بنشه که برای سر خودش و اطرافیانش نیاره. این چه با ده؟ خودتونه؟ چه باغ خوشگلی داریم. <تصفيق> تو خونه یادتون نگهش داشتیم؟ این گوله رو از اون برمی‌دارید، نه؟ <تصفيق> امروز یا فردا میگیرنش. دنبالش هم دستشون بهش نمیرسه تو این مدت هر چیزی یاد نگرفته باشی مخفی شدن و مخفی کردن و خیلی خوب بلدین. بسته رو میخوام هستش خب این خوبه کار رو راحت میکنه مخصوصا واسه اون خانم چی بود اسمش؟ خیلی از من تقریب اون خانم یه شرط دیگه نگوه یه زندانی هست مربوط به همین میپروند محرم شالسی شما بهش میگین هاشدائی جرمش خیلی سنگینه حکمش کمتر از اعدام نیست اون بسته اکس احسام... هم هم قیمتش ای؟ هست هست شما گوهر شماسیم سردرسیم ها کار سخته می‌خوای؟ کار سخت تاوان سخت داره هسته شما تاج رو سر شام معامله می‌کنی، طبانشو داریم اون بسته کافی نیست یک سال حمل و نقل و سالم به مخصد بسیندن و بار تریاد ما هم دوش نه من دستم تو خرج و معامله کردن با شما لذت بخش شد بده بسید مفید؟ بله بخوا صحب شده <تصفح> ببخشید اجازه هست بفرمایید شما هاید به خواهیتون برسید قضای مقبلی خواب کافی اگرم کاری داشتین به ق میگم به قمر خونم بی... ازت خواهش میکنم فعلا از این خونه بیرون نرم اینجا برات امنتر اینجاست. بفرمین بشینین خمیگه ماجرای این بسته چیه؟ من فکر می کنم کسی با شما کاری نداره. حتی با هاجدایی هم کاری ندارم. مشکل فقط همین اما امانت هاجداییه. سپرده حتی ها اگر گرفتارم که شو دژوزه نذم دست کسی بیفته این بسته. این بسته چی هست؟ هر چی که از جون هاجدایی خیلی دیگه به خاطرش به خطر افتاده شما می خوی همین کارو بکنید؟ تو به خاطر بستهی که نمیدونه چی و چه ارزشی داره به خطر بندازی فکر میکنه این کار درسته وقت خاشدهی سعی و سالم از حبس بیرون بیاد منم امانتشو بهش پس میدم این شو حرف حساب بسته کجاست جاش <تصفيق> به من اعتماد نداریم دارم ترجیح میدم بسته پیش خودم باشه. اون موقع که یه تصمیم درست براش بگیرم. ممکنه دیر بشه. پس حادثه‌ای اتفاقی بیفته. من تو این دنیا فقط حادثاییه که برام مونده. مطمئن باشید خطر نمیکنم به قول پدر خدا بیامرزم اول چهار طرف هم و میسنجم بعدا تصمیم میگیرم. دوربر من پر شده از آدمهای دروغگو در قلباس که یه روزه‌ای را سو ندارن. به وعده این آدما نمیشه اعتماد کرد. خانم مهوانو شما الان عاقل و منطقی نیستین. نیاز به استراحت داریم من همه چی رو درست میکنم خسرو داری پشت هم اشتباه میکنم حالا برای خوشی ندارم تو رو تو دیگه شروع نکن یه هفتیر برستی بیخ کمرت کسی جرعزه میکنه بگه بالا چی شده افروه ولی من تورود میکنم چون دوستت دارم چون نمیخوام اتفاقی برات بیفته نگار نباش خانه من حقاستان به همه چی هست؟ نیست خاندا داشت نیست ببین با زندگی چی کار کرده تو دنبال چی؟ توی این کش و واکش. تو هم ویردت گرفته برای من خواهری کنی پس کی میتونیم با هم دو کلم حرف حساب بزنیم توی این روزا اینقدر اتفاقای بد میفته که مجالی نیست با هم بتونیم اختلاف کنیم آجرای زندگی تو میخوای بچینی چینی بچین ولی نکش روی این خرابه نمیتونی زندگی تو بنا کنی. مهربان و همون کسیه که همه این سالها منتظرش بودم خاطر خاطرون همه کاری میکنم وقت سلام ختم کلام اگه از اول یکی به حس میگفت چوب تو زنبور این اینجوری نمیشد یه جمعهتی به خاطر ندونم کاری شما بدبخت شدم لاقل این دختر رو بدبخت نم من فقط به یه خواهش دارم حواست به این دختر باشه نمیخوام اذیت بشه کار من از این هفته بذاشته این وسط بیگناه ترین آدم همین این دختره بیشاره شده بازیچه یه مشمرد خودخواه عین تو شو خواهی تا این نگرن من هستن گفتم برات قضا درست کردم دو لغمه بخور جون بگیری بتونی خوب فکر کنی راه و چاه کار دست زیاد خدای نکرده غلط نری بر میگردم میخورم شما خیلی به من لطف داری شما یه اشتباعاتی کردی یه اشتباعاتی هم رو کرده ولی یه جایی باید تمومش کنی تو خود تو میزنی خسرو سازه خودشو کاری نمیکنم آسیبی به خسرو برسه همیشه به خودم میگفتم خوانداداشم دور از جونش سر سالم به گور نمیبره حالا به همون اندازه که نگران اونم نگران تو هم هستم دختر جون این کارایی که میکنی کنی زنونه نیست الان دنیا دست مردای حقیره پس بذار خودشون تاوان پس بدن ممنون از اینکه که به فکرم بله، من خیلی وقتی یاد گرفتم چجوری خودم گلیم ام از بکشم بیرون هنوز بر خودم میخوای نرود در سنگ باش خودرو خم برگردون و کارچه که خواستی با هم میریم. من باید برم. ساب کن دختر. با چه شوردار سر رفته که کاری درسته میشه هوا تاریخ نشده برمیگرده گرفت. میخوانم. مهمندی با پوشون کشی فهم میکنه خانم قمر. مگه چاره؟ یا مرا تو دست من امانه که خانم. محبانو. خدا خودرو شکر همیشه اختیارم دست خودمه. شما من به خسرخانتون بگو آدم زنده وکیل وستی نمیخواد به روز بهت پرده نزارم جایی بریم بله شاید این جایی نه نخوریم نخوریم که نخوریم نمیمیریم که مهبانو بای صاف شما نگره نباش. پشمان مهبانو آن تو همه این سالها همیشه به تو اعتماد داشتم حرفات برایم مهم بوده هر وقت هر حرفی زدی و عمل نشدم هم قشمون یه چیزی نمیگی. آیا ازم سوال lactate هیچو هرچی نمیزنن. تو فکر کنم من اشتباهه. کور دل آقا. نه حق میفهمند اما من نه حساب کتاب داره. برو برو يلا. من بیانم فروم دل وقتی میره آخرش شرطه که چجوری تموم شه. حالا بعد چیکار کنیم؟ خلنش بسات قاله این. حالا زرتو تاش باد بریم. نمیتونیم تونیم جلوی اینم آدم بیسیم که. می نه، نه می توانیم. مرازم بیم سر اقایم بارد که انگیلیسه. این مرازم چی آره اره اولم است. لازم. اینم یکی می دیم اکی ازاشمی گیریم. که اشنه که بوریم امی کان دوت و ازمیم گیریم. بلی بارم امی تینم باشه هرپ بزنیم. نه می توانیم. لا برو بی اجنه بی جماعت خوش بینی است. چه از رفتون چه امه. آره بکی آف می آفتشون همی خواهی شهرستونی پهرستونی باشن احجاب تو خریه این دوباره اینجا رو با انداخت آره خب دیگه آبچی رسیدین معمولیت مطا جلو در بود باغیش با شما من اینجا باست دادم زدیار آره. چقدر شلوغ اینجا این همه آدم اینجا چی کار میکنن وازه روز خلوت همونه مردم از شهر و روسته های اطلاف برای مدابه بیماره شونید جایی رو ندارم برن تو مدت درمان میمونن همینجا نگهداری خذیبه ای از این آزم خیلی سخت باشه نه اصلا سخت نیست یعنی با کمک مردم و اهالی بازار خیلی آسانه کمک هم میکنه راستش محصومه جان به اون امانتی که بهت دادم نیاز دارم سبکو هلا هم بردیم موسیقی اجا آهان نه اون نه نگاه میکنن خانم گفتن کسی ما زم نشه خانم نفه آقا خانمش شکی با دیگه همکارش هم آقایتون بارون و سلام سلام سیدیشه آقای کاشفی میخواد باتون صحبت کنه کارم تمام بشه خودم میرم پیشش اون ایسا چیه؟ خودتون گرفتین؟ ایسای کجا هست؟ شما به رئیستتون بگین چند دقیقه دیگه میاد افرام که انوز خالی نکردی بری اه این خونه مال منه شکوه هم از حلقومت میکشم بیرون من چیزی رو که شرط عقله بهت گفتم باقیش دیگه به عهده خودته اینم بدون چه بخوای چه نخوای چه خالی کنی چه خالی نکنی من این خونه رو میخوز من دارم به انبار خانواده سر و سامین بیدم و این به نفع هر دونه که دشمن هم نیستیم فروغ جام هستی من دشمنتم همه این بلاها رو تو سر من رو این پا این زندگی این سرگردونی روزی که باید تابان همه اینا رو پس بدی دیر نیست دانی جان. من به جایی تو باشم به جایی این قذل و نمیدونم قصیدی با فی لوازم ضرورت ورنی و میرم اینوزو فردوس پیسر آدم دفت دستم خونه رو خالی کنم بی خود من تهدید نکن تا لچک سر نکردم کردم و دور شهر نگردوندمت تو با این یه پا اینم پر کن آجید بذارونست دفته بودم نباید بره بیرون چه کار میکردم پشت میبستم؟ ساله کار سلام خود رو خواهد دوچهرتم زغارتم کوابتت سلام مردم <تصفيق> سلام قبر خانم نگفتم برمیگرده؟ قرار نبود تو خونه بمونین گفته بودم تا شب برمیگردم کجا بودین قلومم اقام کجا رفتین؟ ولو را سه شبر رفتیم خونم و یارو دکترها و دخترش مهروانو رفت و یکم عطبخ سد و بعدم یک چیزمیزایی ازش گرفت اومد بیرون تبه کم اون هم اکس باکس های زاهر نشده بود چون بعدش رفتیم دفتر روزنامه اونجا زاهرش کن اینا رو گفتم که بدونی نوست هم بشه هست چی شنگ آره ماسته رفتیم آیست هاستم بریش اومدیم حسو خونشون خود تو نگران مهروانو نک میربان و دختر عاقلیه طرفق در مطر نمیرهدون شما. نگفتم جایی ندیم. منم نگفتم که گوش برف ما نمیده و کار خوش رو میکنه. یا شامتونو بخوری شش بفرما این کهلو بزرگی رو چی شون؟ بایزه؟ هم. من با چند نفر حرف زدم بعد دادن اگه اون بست رو بهشون بدین حاجدهی رو ول میکنن من از اینکه که اینقدر مسائل من هستید شرمنده میشم شرمندگی شما در دیر دوان میکنه. من میگم ما باید با هم هماهنگ باشیم همراه باشیم همدل باشیم ولی شما کار خودتون رو میکنیم من اول باید خانده رو ملاقات کنم اینجوری که نمیشه خب برید با همونایی که باهاشون صحبت کردید بگید که من تا خانده ایمون نبینم ازشون کس به اجازه نکنم هیچ تصمیمی نمیتونم در مورد این بسته بگیرم من دارم خودمو برای بسته و آب آتیش میزنم که عملا نمیدونم چی توشه این جماعت واسه چی دنبالشن به موقعش مطلع میشید بسیار خوب. بریم بریم بالا شام بخورین یکم یک استراحت کنین بعد راجبش مفصل حرف میزنیم خیلی ممنون میل ندارم با من لج میکنین هر چی میگم خلافش عمل میکنین بریم شام بخوریم خیلی خوب بریم شام بخوریم بفرمین بفهمین بهروز خیلی گرست نشه بفهمیم حسن ماست نگو بو بو انجبیم بوزی رو فیده دلش رفته تو جونه گوشتش حسن این خواب میمونه بوشتون نیست نهرما بتن بولیما بتن زیانه تنم مهبر خود بفرم بفرم آبکی بردر بیبی برون بزدم کمرشو بزدم گوزو بیبی حاضر. افتادم. ببینم همارش چی؟ میچی جون شکرم دیدم ما همه یک ساز و دولی را انداخته بودم بیا و ببین خوش کرد با با لسه هم جو مستودم رو یه لب کجا داریم میگیم؟ پنزر کجا؟ خونه یه ما؟ نه، آسلا بتاغلم دادم دستتو اخه این چه کاری بود من کردم؟ شما نجاتو مروونو اجدایی رو میخوای منم هم دارم حواله سایه 20 سال در پس هرچی گفتم کردی بی خطا اما الان حالا اونم ریخت از اولش هم خطا بود تو منو برای دزیدن بسته مهربونه به خودت هم کردی ادمی که سراش نمیومنه سر رو بگیری راه همیشه فیصله پیدا کی هست که اینقدرش مطمئنه اینقدر قدرت داره بسکرین به من خواهر نادر اگه اشتباه کنی این آخرین اشتباهته چهش بسیبای صدیه با اجزتون رو مر همینجا مرخست بشم به برادرم چیه ولی اگه تصمیمت شد بگی بله یه نه هم کنارش بگو بگو نادر نه نباید تو زندگی مون باشه الان همه فکر و ذکرم پیش دایمه اگر خواستی بگی بله به صرف زیری کم حرفش نگاه نکن مار هفت خطیه که هرچی بلا تو این زندگی سرمون میاد اون نقششو کشیده. اگه تونستی همین اول کار این بختتو از زندگی کنار بزنی که زدی. ولی اگه فکر کردی توانشو نداری خودشو رو بلکن و برو. الانم نمیخواد تنها بمونی. بیا بریم بالا بشویم. چه چیز مهمی شده که این وقتشم منو از خواب ناز بیدار کردی؟ هر کی غیرتت بود اجازه نمیدادم. نمیدونم چرا این نگهبانای خرفت من انقدر با تو بس بس می‌کنم اکساز؟ چپشون کردی؟ ما افری افری پایشم بایم شیشه ی فیلماش کن؟ اصم افردم به قولی که در بیان نکنم دن دناشو بدن می‌شواری این هم اصفی پیش گشی هیچ کس بزرهن شما مهربان نمیشه خیالتون راحت. از محرم از چی؟ که بیدار